خب باب الحيز والنفاس باب حيز والنفاس اقل زمان تحيز له النساء تسو سنين واكثر غير محدود كم ترين زماني كالزان حيز مشي نوح صالح كم ترين سمني كالحيز مشه چان صالح اكثرش محدود و مشخص نيس واقل الحيز يوم و وكم ترين حيز يك شبان روزي واكثر و خمسة عشر يومان و بيشترش یعنی دیگه بیشتر از 15 روز کسی هیز نمیشه کمتر از یک روزم میگه کسی هیز و اوسط هستون اوسط و متوسطش هم 6 یا روزه و اقل الطهری بین الحیزتین خمست عشت کمترین پاکی بین دو هیز روزه طرف الان هیز شده خب تا پوزه روز روزه دیگه دیگه میگه هیز نمیشه کمترین مدت پاکی پوزه روزه و نيف و اشرون و دي وأكثره غير محدود و هم مشخص ميبينك يك شخصي تا يك ماه هم هايز نشد بازه هايز قبلش تا دو ماه هم اكثرش دك مشخصيس ودم دمو سخين ثخينون يضرب يضربو الى السواد رنج خونه هايز ميگه خونه هايز غاليز هست خیلی سرخ هست به سیاهی میزنه از سرخی به چی میزنه؟ و دم استحازتی رقیق مشرقون یا داریبو الى صفرتی اما خون استحازه رقیق هست روشن هست به زردی میزنه به چی میزنه؟ به زردی خب میگه فقها در پاورقی چیز قشنگی گفته میگه فقها ها سخن رو در رابطه با استحازه و احکامش خیلی طولانی کردند و خلاصه آنچه رو که من میفهمم این هست که شخص مستحازه سه حالت داره خوی یه شخصی هست استحازه شده خونه هیست مشخصه ولی این شخص استحازه شده براش سه حالت وجود داره یه زنی هست که مدت هزش معروف قبلا قبل از استحازه خب همیشه هز می شده. میدونه که چند روز اصلا حیز میشه و مدت شو هم میدونه این میدونه تشخیص بده که این آیا حیزه یا استحاضه هی. همون روزای قبلی رو در نظر میگیره ولی حالت دومش این هست که ایام حیز برایش مشخص نیستن حالا یا فراموش کرده یا این که زمانی که بلوغ شده اصلا مستحاضه شده این چه کار بکنه میگه این شخص خون حیز و 6 روز یا هفت روز در نظر میگیره. البته این نظریه شوافع است تو نظریات دیگه هم در این مورد هست و حالت سوم این است که شخص قبلا عادت مشخصی نداره ولی میتونه از روی رنگ تشخیص بده که این حیزه یا مستحازه استحازه این دیگه تبقیمون تشخیص خودش کار میکنه عمل میکنه اینو در پاورقی براتون توضیح دادم خب حالا دقیقت کنید و یحرم بالحیز ثمانی تو اشیاء. با خون حیز حش چیز بر شخص حرام بشه الصلاة والصيام والاعتقاف والطواف وقراءة القرآن وحمل المصحف ودخول المسجد ووط وزوج إن حش چیز بر شخصي كه هزهز حرام هستن نماز، روزه، اعتقاف، طواف، قراءة القرآن حمل قرآن وداخل شدن در مسجد وهم بسري کردن بهم سر. وإذا اختصالت من حيزها حل جميع ذلك لها زمانك كه غوصل کرت تمام اين كارب حلال میشه ولا يحلو قبل, الغسل إلا قبل از غسل هیچ چیزی برش حلال نیست جز روزه یعنی شخص حیز بوده نما مثلا موقع سحری حیزش درست شده حالا سحریشو میخوره مشکلی نیست بعد از ازان یک ساعت بعد بیاد غسل بکنه هیچ مشکلی نیست و تقضی ما ترکت من سیام دون سلات خوب حالا که این مثلا حیز شده نماز نخونده روزه هم نخونده نماز نخونده روزه هم نگرفته میگه نماز شو قضایی میگیره نمیگیره اما روزه شو چکار میکنه باله و تقدیمه ترکت من السیامی و قضایی میگیره روزه های رو که ترک کرده دونه سلاه نه نماز رو نمازه رو که در, در دوره در ایام حیز ترک شدن اون نمازه قضایی به اجماع فقه ها ولا تحرم مواکلت الحیز ولا الاستمتاع بها دون الفرج منها نیست غذا خوردن همیشینی با هااس بهره مندی بردن استمتا تا کردن از زن البته در فرج نه در جاهای دیگه آه پس معاکله له غذا خوردن یا غذاش رو خوردن موردی ندارد. و المستحض التي هیه اللتی ترد فی غیر ایام الحیز که طاهری الا انها تتوضه لکل صلاة فریضتن بعد غسل فرجها و شدهی بگی شخص مستحضه و مستحضه اون کسی هست که خون رو در غیر از روزهای حیز میبیند مانند انسان طاهر هست مانند اون زنی هست که پاک هست پس مستحضه مانند اون زنی هست که چیه؟ پاکه با این فرق که برای هر نماز فرزی وزو میگیره بعد از این اومد شرمگاهش رو شست و اونو و یه پارتی چیزی بست و همچنین هست شخصی که مزی میشه و سلس البول داره این هم باید مثل انسان طاهر نماز میکنه. و اقل نفاس کمترین مدت نفاس یک لحظه هست کمترین مدت خون نفاس خب بعضی مناطق مثلا زن تا چل روز نماز نمیخونه ولی اون که خونش بنده این اشتباهه خون که بند شد بعد طرف چی کار بکنه؟ بله و اکثر هوست 2 یومان، اکثرش میگن 6 روزه و اوسطه او 40 یومان و, و متوسطش 12 روزه. و یحرم آل النفاسایی ما یحرم آل الحائز بر زنی که خون نفاس داره حرامه مون چیزایی که بر زن حائز حرامن. اون حشکاری که بر زن حائز حرام بودن بر زن که نفاس داره خون ولادت داره چیه اونا حرامن برش و اقل الحملی ستت و اشور کمترین مدت حاملگی شیش ماه و اکثره اربع سینین و اکثرش چار سال ولو این والله اللحظی علمی آیا واقعا ثابته یا یعنی نه نمیتونه که یک بچه چهار سال در شکم بمونه یا یعنی. نه چون در کتب میارن مثلا اون قدیمه که تأثب داشتن میگن امام شافی خودش چار سال در شکم مادر بوده <تصفيق> بعضی میگن از ترس شافعی ها و هنفی ها یک جکایی رو ولی خب ما ما این جوکار رو حتی گفتنشون رو هم مناسب نمیدونیم چون قدیما تعصب متاسفانه زیاد بوده خدا رو شکر این روزا به فضل خدا تعصبات مذهبی الحمدلله که خدا رو شکر حل شده